جالسه تانچوم از جاسارلوستا چه فرق؟ السلام السلام محمد و نفسی موجوده بعد موضوعی اطوره است یعنی تارتاً بعد موضوعی سفتیه و تارتاً بعد موضوعی تلیقی در مقابل بعد تلیقی محض که جمعه بیشه سفه و بعداً آقون در در حوالی بوده هر کدام از قصد موضوعی سفرکی و تحریفی رو که موضوعی رو بزر و بعد تمام موضوع موضوعه موضوعی که میشه قصد موضوعی بنابرای تحریف شماعه بزر و با که همیشه تند و بعضی ها بیشتر از ولی اونچه که باقی اینداره به تقسیم موزنده همکن از تقسیم جبایه قسایل تقسیم بعد تقسیمیش یا به طریقی یا به موضوعی و صفتی و طالتاً طریقی در مقابله به طریقی این رو گفتیم قیلت اینکه بباقیس اصولی به خودش حساس داده در بعدی از نباحث مونده یه در اگر کتی بتونه تشریف به نوع قرد آیا قرد طریقی یا موردوی سفتیه یا موردوی طریقی این جفاقت زیادی داره در تشریف کنک شرعی نسبت و مفتوشی مرمویسی نسبت قرد طریقی مرمویسی در این به فشقه از احکام واقعی بنابراین حساب نفسه که امامیه عبودتاً بایده که احکام راقیه ضبورت واقعیه که داره بریه که از شروط حدوده منتقدیف و از زندهی مخلطه و ایلا بردازم جمعه این بشریده کنیم منتقدیف زندگاهه و در لوح محفوظ ثابت و اگر Here's a thinking process to در ذهن ماطور مطلق واقعی نبوده یا متوجه به نظریه کتاهوا و قوم یا انشاءات ها نوعی از دو و تفصیل اشعری و معتزلی" "و بعداً مصنف در وسائل دو نظریه رو تبیین کرده بین یا تیش کرده یا و بین دو بول تصویر در تعدیدش قائل به مثل شده به اسم ما در دور صابقه داشتیم این نوع تصویر برخلاق نظرده که قائل هم بگیر که قاضقه آقایی مطلبه راقایی و حالا خیلی مهمه این موارد بعد از موارد موضوعی باشه یا طریقی باشه و خود موضوع های از اخسام سختی باشه یا طریقی یه همیت زیاده داره و مرتبط میشه به دو از عباب مهم بکردی به حضورت قاعده یکی باب عناوین و مهندان هسته تردانده ترین مقامسه فرد و بلکه از ترین مقامسه حضوریه اینجا ما تشکیز بدیم تا یا حکمی به انوان تر گرفته گرده یا به معنی بند و ذات اون شیط گرفته این از مسایل مربوط به وقت موضوعیه و همچنین در باب فضا ارتباط زیادی به تقسیم گفت طریقی و موضوعی پیدا میشه مسائل مسارل هم از مسائل بزاری مرتبط به بسیدات بس رویه و از نحری تبسیش اینو در دوره ساوه در همین علاقه مقدمات شانفقه دو برای شیخ همه موزید زدیم و ارضوه داده بودیم که این دستگاه همه از ساوه که قبض تدیلی و قبض موزید تماه معلوم نشود یعنی چه خود شیخ همه ساری که بعد از ایشون تمام ما و شروعی که و این کتاب نرشید شده و چه تغییراتی که در این کتاب شده اینها ارتباطی بسیر از این مواقع صدر به مواقع صدر یا مرتبط نبودند یا اینکه که تزرکار و نوعاً مباعث رد رو یک مبحث تلاقی تلقید هستند نمید که خیلی تصدیق از این مباعث به از مباعث تلاقی با اینکه این از عمله تری مباعث فرکی حساب میشه و برای کشف ارتباط بین این بسمت از و تمام به این تیز دو تا باب, باب از افلاق مهم یکی باب انامی معنینات و یکی باب که یک اتحسان زده به مباعثیت و هچیت بین و نا مرتبطه به همین بحث بنابراین تعمل در این مبارث دخیل میشه در کشف خیلی از ماس احتام که بر خیلی از اعلام معزل عمدهای بوده و هست در تقصیبی که بودم آسان افتاره نصف قطع تاریخی و قطع موضوعی دو تا مثال گفتیم تیم هست دو تا مثال برای تقریب به ذهن که یک مثال الخمر حرام و مثال دوم الخمر و معلوم حرام که در یکی نصف موضوعش ال دخیر نیست در یکی ال دخیر در, در اون موادی که ال دخیر قطع خواهد خود خوده در موضوع حکوم شریع حرام یک بس به و یک بس بشتن. معلوم بنابراین علم خمریت دقیقه در این موضوعه. موضوع یک موضوع مرد و بیدیه. این دومیگه قبل موضوعی کن در موضوعه. ولی در الخمر و حرام که غالب حکوم شریع از همین سنخه دیگه موضوعیت نداره بلکه تریفیت داره بکرش قطعه موضوعی به این معناسی آیا موضوعیت داره برای ثبوته بود یا موضوعیت نهد اون چیزی که در ازهان خیلی اهمیت داره اون چیزی که در اذهان هست اینه که تاریخی رو، و علماء یعنی قاتبه و بابنها اینطوری طوری خواستی می کنن که قطط طریقی آسولتر از قطط موضوعیه یعنی اهمیت قطط موضوعی بیشتر از قطط طریقیه و اگر قطط موضوعی داشته باشه این خود مهمتر از موادی که قطط خواست طریقیت داشته باشه به این گفتی یک نظریه بیرکنیه باید بشه این که بطر خیلی اهمیت نداره و در موضوعی تاریخی هسته این اتفاقا برعکس یعنی در تمام مواردی که علم دخیل در یک موضوعی اون رو سانوی درد و در تمام مواردی که علم دخیل در موضوعی نیست، اون رو مطمئن اصابی شد بنابراین بطر تاریخی اهم از و به اگار در تمام موارد احکام واقعیه این و در تمام موارد احکام زاهیه علم یعنی در ثبوت و بنجاست و آثار نجاست علم دخیله. دخیزه گنوشنی نزید حتی تعرف انهو قصد یعنی خیزارت واقعی نداره اگر ما جمع در ایل پیدا کنه داره پیدا نکنه وجود نداره بنابراین موضوعی واسطه در ثبوت قبط موضوعی در ثبوت قبط طریقی هیچ اصاطتی نداره در ثبوت رو میانند بلکه تنها کاشتر کنه و بنابراین نذریه که قطع موضوعی واسطه در ثبوط و علت ثبوط حکم و قطع طریقی بساطه از هیچ وساستی نسبت به حکم نداره فقط میتونه پاشف از یک حكم واقعی باشه به هیچکدام از قطع طریقی و قطع موضوعی هجت اطلام میمیش بخای حجت از نظر باب عدله و عقیسه عدل و منطق به معنای واسطه در اثبات هر چیزی واسطه در اثبات باشه بشمیگ ه اگر چیزی واسطه در اثبات نباشه دیو حجت نیست و افروف اینه که قطع طریقی اصلا رسادت نداره و قطع موضوعی واسطه در ثبوط نه واسطه در اثبات و اگر تبیرات مصنف غیر از اینه آقاین برگردنم به همین تبیر حالا خصوصیاتی رو ایشون ذکر میکنه سه تا خصوصیات که در ضمن سه تا فرق بین و برد طریقی بین دفت تاریخ و برد موضوعی از سه جهت فرق باید یعنی این فرق ها فروغ علمیه حساب میشه یا فروغ عملیه حساب میشه. ظاهر بعضی اینها این هم این فرقهای علمی و ظاهر بعضی از ها ها فرقهای عملی هست این هم در مقام بسیار تحصیل می یکی از اونها این بود که قدر طریقی گفت که واسطه در اثبات هست و در اثبات نیست و برکه موضوعی در اثبات و گفت که می در تحبیر باید برگرده همون تحبیری که الان گفت قبلی شد که قطع طریقه اصلا بساتت نداره و قطع موندوی واسطه در زدوده بنابراین هیچ کدام از افتام قطع واسطه در اثقات نیست ازا به شرکت اطلاق نمیشه قطعه با به اون معنای که من کدیگی میگن با. که دوم اینه که قطعه طریقی مطلبا مدسیت داره و فرقی بین خصوصیاتش از حیث قاطع و مخصوم به و از خواهر داد و از مانباد نداره یعنی قطعه طریقی مطلبا مدسیت و خصوصیت رو داره بدونی که بین افرادش از حیث و شخص بازه و چیزی که فرق بشه و گرفته یا اصبابی که اونها بردازه شده فرقی باشه بین خصوصیات لای و فرقیه در سنبه ماهانم این لای و فرق را بود بین حالا خصوصیاتی که داره چهار تا خصوصیات برای هر هست این در این رضایل بس به نظر ما باید یعنی چهار نست. یکی همون حالت نفسانیه قبل یک حالت نفسانیه که از نظر خارجی بهش ثبات میگه همون استقرار ثبات در مقابل تردید و تذفت بعضیا بعضی مردد در یک امری میشن اون آن حالت نفسانیه ثبات رو یا مزرزره بین دو امن میشن مزرزره بین کلاس ها میشن تا دو ماه از سال وقتی کلاس ها رو دور میزنن و چیزن نمیشه سال وقت میان دور میزنن نه ها حاصل نشون اون حالت نفسانیه سباف و استقراره این یکی از خصائشه قسلت دوم اون کاشفیتشه قسلت سبوم ما تعبیرات مصنف داریم نه تحبیرات خودم در من گفتیم و بعدا این های من خصوصیت یکی حالت نفسانی یکی همون کاشفیت در بام اون عملیه دست به از انسان وارد عمل میشه و چهارم چودی اصولی این ازش میخواهد من از و معزیه و اگر قرض قرض ما تریحی باشه نه ی قرض لوفیه با من منهای سلطاتر شخص باطل, باطل ما دربی باشه میخواد توسط افراد قطعها باشه خاص باشه بعد اگه تریحی باشه معیا تمامه ولی مفعوله یعنی به میخواد مطلق باشه میخواد موضوع مشعری باشه میخواد به امور عقبی باشه شرعیات باشه عقلیات باشه بین مفتوئه به نیست و اینها تفصیلاتی داره در مقابل این که بر خود مستنده ها رو با میشه روش برد بایدن در و همچین از اسباب هم سبب قرد هایی که سنت بوده یا علم رنگ و جب و استولاق و نبیدونه ارکان امثال اینها بوده سبب قرد چیه ما این قرد و از چه راهی حاصل کردیم این ها آیا دیگه در قاعده تدینی مشکلی نیست. این قاعده باشه، خاص علاوه برش کتاب سنت باشه، خاص جزم باشه، فرقی و همچنین ازمانش مانش، زمان حضور معصوم باشه، خاص زمان غیبت باشه، خاص زمان استدادس باشه، خاص زمان انتخاب باشه. یعنی ازمانشم هم فرق می‌کنه. اگر باونهو طریقاً الى متعلبه تو مبینی بر طریقه متعلبه شه وقتی طریقیت داره و طریقیت ذاتیه و یه طرق سبا علیه احکام و متعلبهی یعنی اگر علا شم را حرام برا ما بشه میشه احکام شم برش متعلبه بشه شخص میخواد بر طا باشه میخواد نمیشه خواهد از کتاب سنت ما این علم آسف کرده باشیم خواهد از علم رم باشیم خواهد زمان ازداد باشی یا نباشیم بلا یه جوز لشاره همین جنها عمل به این لنه اون مسزم و اشاره نمیتونی نتونه از عمل قطع طریقی به خواهد اون مسزم تنابضه چون قطع طریقی به این معنی عمل به این واضحه به خواهدی که خصوصیاتش یعنی عملیه درسته درسته در تخت عمل احتمال عدمه اگر شما واش ما به قرض عمل نکنید چیزی در این عالم استقرار پیدا نمیکنه نه بنا وا شما به قرض عمل نکنید چیزی موثق و قابل دوام حاصل نمیشه هر چیزی آخر پای به قرض بشه اگر به قرض عمل نکنه نمیشه کاری انجام بده نهایتش واش به قرض عمل بشه و اگر قرار بیاد نه کن اگر عمله به بعد این مستوزم به بخواستی که تریخییت در, در دلیل برای اینکه به این لازمه از نظر عبری و تکیبی اگر شار به عمل نکنیم و میشه حالا مثالی که میزنه و ایزا خود عرب ما بولا، اگر بعدی که حاسب میشه اینکه یک مایه ما بوله منحییه سبب انتا از راه اصفابی باشه که یا خدا اصفابی باشید و غیر مطهرکه یا از سریع بعینه هست و باشه میخواد خواب باشه یا خدا باشه چرخ باشه ادمان باشه اگر بالا جوز شاره یک کما به ادم نجاساتی شاره میتونیم این ندست نیست او ادم یا بگی شناب زنی مایی که مکتو چرا؟ لأن المفروض انه به مجرد و به قبطه یه سلولهو سقرا و کبرا فرقیه و شرعی یک سقرای ویشدانی حاصل میشه جهازا بولون و یک کبرای شرعی حاصل میشه برای شخصی مفروضی این شخص فقیه و تمام عدلیه رو دیده کبرای آسو میدونه که کلو باولین یکی بر اجتناب انگو با کسی هم صغرا رو داشته باشه هم صغرا رو داشته باشه و به نتیجه برشون خرطب نمیشه این برخلاف اولیه به خاطر در شکل البن همیشه خرطب و نتیجه برد مقدمه صغرا و صغرا حتمی و لازمه و تجبیناً و عقلن همیدوره هم نهوب مجرد و دلقص دلباولیت یه صور نهوب صغرا و جانگیه و کبرا شرعیه و نتیجه تابع به اخص مبادمه که باشه و اخص تو چه وجدان بگیریم که شر بگیریم هر کدومش باشه لازم که باشه یعنی نبر خلاف شر میشه من یعنی که از نبر خلاف وجدان حاضا بولون و کل بولین یک بول اشتنابان شرعن و حاضا یک بول اشتنابان کسی بعد از اومدن سغرا و کبرا نمیتونه نتیجه رو برش مترکب نکنه چون به معنای انتار شکل اول قیاس به این معقول معبول و حکم الشارع دعن نهولا یا جبلشنه و انهول مناغذون لب خود حکم شرعه و نقض وجدانیاته این دا اضاف پر ز ادم و و وجود من اخاکام نفس بود مگر اینکه موجودی باشه که نجاست و وجود به شنا احکام زخواام نفسه نباشه یعنی ذات بول این احکام رو نظرره، بول این احکام رو داره که معدوب باشه. و اینا در واقع بوله، نفس الامری و ذاتی و باقی این دو حکم رو نداره نه حکم روزی نجاست رو داره و نه حکم تجلیفی حضور اشناده این دائزه خورزه قون القبطه موضوعیه یعنی خورزه عدم و قونه نجاست و حضور اشناد من احکام ذات الگول بلکه من احکام ما علم و یعنی فقط موضوعی باشه البول قول المعلوم ندست برمین احکام ما علم و او ها علا خاص یعنی اون معلوم شدنش هم یک وچه خاصی داشته باشه نه هر معلومیتی بلکه معلومیت خاصی منحیص و سبر یعنی سبرش به باشه یا بگیه باشه یا به اشنام خود طرف باشه اوش شخص یعنی شخصی که داره این پیدا میکنه مثلا قدفا نباشه به امثال این ها و یا قدفا این پیدا کنه به گسلانه نمادش باخلی است علم پیدا کنه به نجاست لباس لباسش نجیست قول قیلون یا از جهات دیگه مثل زمان امتدادم ساله و یک رو جل در این مواقع مخفوضی البول معلوم نجیسون مخفوضی نه و یک رو جل علم هینه ازن ان و یا خیر موضوع یا جزء است خلاف انتساب یابی یعنی ان شاء الله خواص معلوم المعلوم نجسون این معلومیت در در موضوع آیا دخالتش به نحو ترکیب یا تقدیره یعنی جزء موضوعات مقیده است یا جزء موضوعات مرکبه است فن نوعا قبلا گفتیم که قاعده بر اینه در تعبودیات حمله بر ترکیب میشه در اقلائیات و شرعیات غیر تعبودی حمله بر ترکیب میشه و کمله ها من سقرات که و علیه ها و قد دفله ان من ها همه یاد این در مقام تطویق تکلت سیاد و این ها تکلت ها رو خود اون شروعی که به وسائل خوده از از طرف آشیانی باشه صاحب اوصف باشه یا قلائب باشه و دیگر شروع یا بازدروشی امسال اینها در مقام تدبیر فقهی احساس میشه دستشون سیشون بسته یعنی خود شدن در حمل عبارات و تحبیرات ولی ای ای اینها در چه مواردی مترتب میشه لذا افقی که ناینی برش هست، بالاتر از این افقی که خودش ای وقتی ما میگیم امروز معلوم حرام یا البول معلوم نجس این معلومیت ها یا به نحل یا به نحل ترکیبه این در مسئلک معلوم نایمی معلومه در مسلک خیلی از محشین و شروعه رسائل معلوم نبود. در حد یک مثال برای تدهید بزن چیزهایی گفتن ولی از نظر عملی های نصلاقی داره یا نداره این ظاهرش این که اصلا مثال فرقی براش پیدا نمیشه با این که اون روز دفتن جایی هشتات در صده فکرم ها به همین محضه آیا علم دخیله یا علم دخیل نیست؟ کسی باید علم پیدا کنه به زیدیت امام جماعت نه به ادالتش اون که از محلب هم به زیدیتش این زید بوده اون عمد بوده ما همیشه خوش در زید نماز میخوندیم بعدا با آنکه اون مریض دید و شخص دوبه میداشته میخونده این زیدیتش این علمیتش این ادالته اینا نحنیت در این کیه برای این طلبه ها تا من المهد الالله سوال مکنه چونی این یکی از که بر طلبه ها هست و عیب عمومی و عمومی عمومیه احساس نمیشه چون بلا میگن وقتی عمومی باشه آسون میشه تحملش مثل زلزلهی که میاد همه رو میبرید برای این قصه نمی کنه ولی یه یک بلای به یه نفر وارد بشه و این بلایی سوال در حوزه ها عمومیه فرق نیست نیست چهیل سال در خارج که باز میپرده که این پشتره زید نماستونده با این که بخواستی پشتره هم نماستونده و هر دو آدلن هر دو آدمن امثال اینه برای این سوال نشه و این عیب ها جمع بشه نیازه بینید که ما خودمون تشخیص بدیم رسائل رو طلب میخونه برای اشتهادش نه برای اینکه و هر دو مقدنه باشه برای نشرفتن تو درطای خارج و ذکر گفتن به اینجور عمرمون رو تلف کنیم عمرها رو تلف نکنیم از الان همه چیزیشون داره میگه الخمرو, الخمرو المعلوم حرام الخمرو حرام این از نظر تطبیقی برای طلبا باید حضی باشه علم به چه نهی دخلیه ما این لحظه علم رو در روایات نداریم یعنی شما از اول وسائل تا آخر وسائل ده تا روایت شاید پیدا کنید که علم درش دخیه ولی مستعای اینه مستعای ما اینه که هشتات درصد تیخ ما متبط بند یعنی شما به هر روایتی نگاه کنید باید معلوم باشه علم درش دخیه هست یا دخیه مثلا مثلا از موارد باب شهادت یک شخصی علم لدنی و علم جبرئیل پیدا کرده این شخص و این شی رو از این زید دستیده حالا میتونه شهادت بده خیلی از ما هم خوب علم لدنی داره یا جبرهیل برش نازد شده بهش که این دستی کرده چرا نتونه با از نظر موازین بزایی شخص نمی شخصی میتونه شهادت بده که در ظاهر دیده باشه و الاد جبرهیل برش نازل بشه بگه این دو ما نمیدونی شهادت بده و این مرتبط به همین بحث طریقی و موضوع میشه که علم شاهد در باب غذا موضوعیه یعنی علم وجدان طریقی موضوعیه به این معنا که باید از طریق رؤیت باشه نه علم طریقی که اگر ما علم لدونی هم پیدا که از شهادت بده. یعنی علم شاهد علم موضوعی یعنی خاصه از یک تری در شهادت باب زنا هم همینطور و سایر هم باب بین این علم ها باید معلوم باشه علم ما به زیدیت مانجام ادالتش، به علمیتش علم ما به فقیل بودن آیا شخص فقیه تا رهی زکات بدیم؟ آیا این شخص یده تا به اشتهم بدیم؟ این علم ها کدوم علمه؟ بنابراین در حدی یک مثال نمه هشتاد در سطح فقه مرتبط به همین با. که مرتبط میشه به دو تا از بحث های خیلی مهمه اصولی یکی بحث عناوین و و یکی بحث واسطه واسطه در عروضه یا واسطه در صورته یعنی این علم یا در سبوت یا در روز این و یکمون معصود هم بیره حرافت که که علم در اگه تریجه باشه اصلا بساطر ندارم اول درسته گفته بساطر ندارم هر تعبیری آقایون اینم بگم به صورت قاعده کلی شما هر تعبیری از ماش شنیدید مرتبط ما به باب تعارض این که میگم هر تعبیری از ما شنیدید تعبیر تعبیر لفظی و این تعبیر معارض شد با تعبیرات اعلام میخواد از معاصلین باشه میخواد شیخنساری باشه سید مرتضا باشه هر کدام از اعلام. در دوران بین تعبیر من و سایر تعبیرات تعبیر من مقدمه یعنی اینطوری که با قفلت گفته باشه ما در قصد طریقی تعبیر اینه هیچ نوع وساطتی نداریم اگر شیخ هم تاری نوشته به ساطتش برداره یاد قوسخ نوشته به یه نهر دیگه واسطه رو ما قبول نداریم نه یکی ندیده باشم در دوران بین دو تعبیر به خاطر این سر مباحثه بعضی از میگن معلوم نیست مراد فلان چیه درسی میرن خیلی از این مباحثات که در غوضه هست اینها 60 درصدش مبهم. یعنی معلوم نیست این تحبیل اشتباه بوده تحبیل تساموهی بوده وقت در مقام خوندن این کتاب ما هیچ تساموهی هم نداریم حارو هم با کسی نداریم بیایم بگیم از بابنه میدونم چی بیایم بگیم نه اون تعبیراتم هم درسته و مراد شیخ انساری هم امید. این طور نیست مراد شیخ انساری طور نیست و قطع طریقی اصلا وساطت نداره و قطع موضوعی واسطه در صورت این تعبیرات را آن دفتت کنم حالا ادامه داره این بحث گولانیه و یکون محفوظم بی طرف الموضوع پس اونو ما از خودتش تشخیص بدیم کلمه علم در روایات نیست به خاطر همینه که طلبانه میتونن ما بشن این نوست درصدشون آخرشون باید بزنن به یه راه دیگه این نمیشه ما علم طریقی خونده بودم و در روایت اینا رو ندیدیم دیدنی نیست یودرک لا یورا، این علم یا طریقیه یا موضوعی در روایت دیده نمیشه این به تشخیصه یک تشخیصی میخواد از سمخ تشخیص ناینی اون تشکیز میده و مسائل زیادی برایش متدبطه میشه که بعضی که در مکاسس مخونم بگن یعنی این مسائل متدبطه به همین بحث که این به خاطر تشکیزه ما اگه تشکیز بدیم این رو خیلیت موزلات همه ما دیگه نیاز به تقلید اصلا نداریم طلبه ای که مطفیشون از رسائل علم به موضوع پیدا کنه علم به حق پیدا کنه در رو کنه نیاز به تطبیقش کن حتی زنش هم می کنید ازش تعلیف کنید و یکون معفوزن بی طرف الموضوع و حکمهو حالا حکمش و اثرش انهو یتبع و بعتبارهی یعنی ما از خود تشخیص بدیم از خود تشخیص بدیم هایی این فریقی یا موضوعیه یکی یتبع و بی کلیفی یا بعتبارهی در نحوه اعتبار اینه دایا طریقیه یا موضوعی یستبع اوفی کیفیت اعتبارهی و نحوهی باید باشه آره، باید باشه یعنی نحوه اعتبار دایا علم به نحوه موضوعی اعتبار شده یا طریقه, طریقه میشه. کیفیت یا تو که تشکیس بریم یک معیاری برای تشکیق ایشون میگه معیار تشخیص مقام استاد یعنی ظاهر عدل نه مقام سبود یعنی با علم جبر با اصطلاف با خواب، با علم جبرهیل حاصل نمیشه مقام استاد ظاهر عدله آیا علم و طریقی کرده یا موضوعی بعد ظاهر عدل را تجار بفهمید فهمیم اونم با قبعه اسم یعنی مهارت میخواه بسته کلاژهای مهارتی که خیلی دارن، یعنی مثلا دو نفره، دو تا مینام نجیارن، ولی کار یکی خیلی دره یا دو تا خیاطه، خیاط‌ها همینطوره، همه خیاطان. ولی یک نفره که خوب میتونه بلیزه، بخاطر مهارت داره. استنباط هم همینطور، دکترا هم اینطور، دکترا خیلی‌هاشون نسخه نمی‌تونن بدن. یعنی این باور می‌کنید؟ تا چه حد می‌تونن رو تشخیص بدن؟ شما 10 آزمایش بیا. آزمایش مردم مرد میگه یعنی این وقت بالاست ما طلبام همینطور تشریف میخواد تشریف رو از روایت چطور بفهمیم خب شیخنساری چقدر تشریف داره اگر اون مسئله که طبعیتش از مشهور نبود تشریفش نیسته ولی چون تا به فتاواش فتاقاش در اومده و نوعا خلاف مشهور چیزی نبود ولی تشریف نایمی نبود درسته در یعنی که من از ظاهر چطور چطور تشریف دین خودشیخ و اینی خیلی فاصله است این تشکیف ها مهمه دین برمایه تبریزی و معاصلینش چه فرقی بود بلیده علمیت که همه دارن همه رو خوندن همه یه دست دردن همه شاهده های خوبی بودن ولی یک قوه دیشون داره نحوه تشکیزشون این تشکیز بدید نحوه تشکیز یا آغازی عراقی با اصفهانی چه قاعده با می دارد مگه میشه بگه اصفهانی خوب نخونده نه همه یعنی مسیر فکر کدوم طرف بوده الان تمام اون افکاری مغلد اثر افکار شایخ صدر در تشقیق مبانی فقهی مقتلای به که که در این موارد استفاضه جاری میشه یا نوبت به قاعده دی میده شه اونهایی که تابه مبانی شایخ صدر باشن نمیتونن تشقیق بدن به این بدی بخاطر این در این مکتب نیست ولی اگر کسی هزن باشه، باشه، این که مسرک آستابالحسن اسفهانی باشه نایینی باشه تشخیصش نود درس پس نحوه تشخیص مهمه اینکه این تشریح اصول و تشریح بدن اصول به چه نحوی الان ما خیلی از چیزها رو مثلا در این احکام زرر میخونیم که چندین چیز حرامه ولی ما تشخیص داریم یا صاب غصاب تشخیص میده ما میپرسی چرا انداختی دور میگه اون فلان چیزی که حرام ما تشخیص نداریم ما اسمش اسمشو میدونیم اون تشتیزشو داره و اسم بادم همیتو تیجه های دباره خیلی خوب مسلط بشن ولی هیچ تشتیز نداشتی مهم تشتیز یفتر و فی نحوه اعتبارش و فی کهیت اعتبارهی که آیا علا نحوه اطلاقه او علا وجه خاصه به چه نحوه اعتبار شده این دست دلیل و زالگل این مقام الاسباط مهمترین چیز برای که با حقه مقام اثباطه و ایلا شما ده دور کفاید از اول تا آخرده هم اصلا نداره من اصافی دیده بودم که 20 دور کفاید گفته بودم بلای استنباد بلست بود اول از استنباد که ما یاد بگیریم یعنی درس در درس های امسال این ها کلاس های میشه ما چیز طوری بخواهم استنبال کنیم این ها خیلی مهمه گفتب و اعتبارهی دلیل و دالک الگفتی مقامل اصفاد اون ها چیمی که از طاقت العلم افضل علمو بی موضوعهی که علمی که افضل شده در موضوعش آیا به نحن مجلب افضل شده آیا بلا علاوه خاص که خودش بردن تفصیل می کنه موضوعی رو به صفتی و طریقی بعضی از موارد صفتیه یعنی شما قصد وجدانی فقط باید پیدا کنید بعضی از موارد صفتی نیست قصد دیگر صفتی وقت میگن آقا علم قاضی چرا حجیت نباشید علم پیدا کرده علم وجدانی داره عادل عالم قبیه ولی دلیل اون روایات میگه علم قاضی حجیت نداره خودش علمه وجدانی داره که این شخزانیه و سارقه ولی نمی کنه این باید از مقام اثبات اثبات بشه و بنا بناباشه ما بگیم قصد در اون باب قصد استقاطیه قصد استقاطی باشه یعنی هر کسی در ذاتش این قصد بشه میتونه حکم کنه و مبانی مقامی تقدیقش رکمی به همین قسمت رسائل خب حالا این قاعده کلی. نه اون اصلو میگیم اصل اون نیست اصل چیز دیگه هم. مشهور همین میگن مشهور میگن که اصل در که تروی باشه موضوعی دلیل میخواد ولی این اصل اصیلی نیست میگن چه پاکتیات الله لو ثبوت له بشیء شرط العلم بهی حضی از موارد دلیل دلالت میکنه بر ثبوت و برای چیزی مشروط به علم حاصل بشه مثل قضارت و نجاست آیا در باب نجاست ها احتیاط و سختیری بکنیم؟ ابدا نه احتیاط داره نه سختیری داره اگه شما علم دارید از راه بیان و امثال این ها یا علم وجدانی به نجاست ثابته و اگر این ها نباشه نمیشه حضور به نجاست داره این اصل این مشروط به علم نه ای یک نجاست واقعیه هست ما میخوایم به اون واقع برسیم نجاست ثبوت واقعی هستن نداره این بحثا بحثای ارفانی فقهی نیست بیانیم بگیم کسی اگر با لباس نجس نماز بخونه و علم نداشته این شخص این در واقع نمازش کدورتی داره این حرفار نمیشه بزنیم بالاترین عرفان فقه خودشی است یعنی ما از فقه شیعه چیزی بالاتر به نام عرفان نداریم که بیایم بگیم در مقام اخلاق و عرفان اونطوریه از نظر فقه نه از نظر فقه شرف به اینکه نجس نیست ولی در واقع که خاطر اینکه بعدن این فقه شرف نجسه دوباره بخونه این حرفانیست فقه ما نهایت حرفان شیعیه یعنی اگر بود چیزی انسان رو به یه مقام برسن این فقه شیعه. به سر از وساسی در میاره و سر از بیموبالاتی در میاره هر حکمی در تقصیب ثابته اون دیگه قله اورست ارکان حساب میشه بالاتر از اون چیزی نیست و مفتوضیمی که بزارت مشروط به یعنی اصل ثبوتش شما اگه این پیدا کنی نجسه نجس میشه به الا نجاست واقعی نداره چون از احنام ظاهریه به معنی اینکشاف حیل مکلّف من غیر خصوصیت دل اینکشاف نما پی حکم الاغذنی اگر این بر ما کشف بشه منکشف بشه نجاست ثابت خلوش این نزید حتی تعرف امنهو بزر اگه غزارت، غزارت این فیده کنی به قضارت قضارت هست فیده نکنی قضارت نیست به معنی اینکشاف حیل مکلّف من غیر خصوصیت دل اینکشاف بدون اینکه این انکشاف خصوصیت داشته باشه، آیا انکشاف وجدانی باشه، از طریق بدنه باشه، از طریق چیز دیگه باشه، این خاصیت هست. اما فی به حسن اتیان ما قط العبد به گونه‌ای مطلوباً مولا. اگر ما باید پیدا کردیم نماز چنین نموداً مطلوب کنیم، این محکوم به حسن. و فقه ما یک تول عبد به گونه‌ای اگر ما قاعده به چیزی که مبغوظ مولاس این قبیه انجام داده نشه و اینه مدخلیت القطع ای بالمدعوبیت اول مبغوظیت کی سیرورت هازالفه حسنا او قبیه هم لایق تصو به بعض افرادهی قبض داره در این موارد ادراکات عقلی دخالت داره در تمام افرادشان این طور اگر کسی قطعه به خود پیدا کنه حسن قطعه به خود پیدا کنه قبیل و کما این حرمشاره به حرمت ما اولبان نموخمون او نجاستو یعنی این پیدا بشه به حرمتش او نجاستهی به قول مطلق بناعن علا انال حرمت تشکیدیه و نجاست الوزیه الواقعیتی این نما تعرضان موارده ما به شرط علم این آرزه بر موضوعاتشون به شرط علم اگه این باشه هم اگه علم نباشه نیست علا انال حرمت و النجاس الواقعیت این نما تعرضان موارده ما به شرط نیست اینه این علم پیدا کنه این آرزه بر موضوع در اون خمر و بر اون بود امسانی لافی نفس نقص لهم و قول و بزنه اینکه در نقص لهم نجاست و حلمت ثابت باشه و اشکالی که بر این مدنه از این نسمت وارده اشکال اونده اینه که نمیشه یک بکمی مشروط به علماشه بکمی واقعی هم که با که افته نجاست واقعی آرز میشه بر موضوعاتش به شرط به این تحافت خیلی خیلی بزرگی در تمام موادی که یه حکم میشه بر موضوع معلوم یقینا حکم واقعی نیست بلاشه اگر کسی قیلی نوشته باشه تسامن یا اشتباه در هر مورد حکم مترسته بشه بر یک موضوع معلوم موضوعی مشروط به علمه در اون موارد واقعیت از حکم انتفیه میشه حکم ظاهریه و نمیشه بین واقعی بودن و مشروط به علم بودن فرق. نمی احکام تفصیلی مشروط به علم باشه. احکام که واقعیت اونم مشروط به علم باشه. اگر یک حکم شرعی دیدید که مشروط به علم، یقیناً شرعی غیر تفصیلیه. شرعی غیر تفصیلی. و نه اون مشروط به علم چه ما علال قاعده داریم بحث میکنیم. کنیم بیاییم بگیم کنیم حکم واقعی بوده و بعدا در موادی شخص آلم نبوده محفوب دیگه خب اون از قاعده فارغی می شدیم ملازمه هست دیگه اگر یک حکم ما قاعده داریم دیم اگر یک حکمی مشروط به علم می یعنی در موضوعش علم داخل باشه اون حکم نمیتونه تونه حکم واقعی باشه چرا؟ به خاطر اینکه حکم واقعی و حکم ظاهری و اعلان چطور تفسیر میکنن؟ به یک نه تفسیر کردن در هشت تا تفسیری که براش اومده همش مختلفه. می یعنی هشت تا تفسیر و تفریق بین حکم واقعی و حکم ظاهری نوشته شده اصلا کتاب های مجزای براش نوشتن حتی کتاب های فارسی براش نوشته شده که کاملا دیگه فنیه ما این مباحث اینطوری فارسی بنویسیم که هر کسی بخواد بخونه وقت در تحقیق بین حوزه واقعی و حوزه ظاهری کدوم یک از این 80 درصد ایش کنه خودش در ما در هیچی فکر میخوره هیچ فردا اون چیزی که قاعده است میشه قبول کرد اینه که معیار میخواد میار معیار اگه نباشه همه چیز به هم می‌ریزه ما اگر بنا باشی در دسههای تابع شیخ باشیم در کفایه تابع آخن باشیم ما همیشه تابعیم دیگه هر کسی میگه قبول میکنیم دو سال درس خارجی میری این قبول میکنیم بعدا یه درس دیگه میری اونو قبول میکنیم معیار نداریم معیار میخواد معیار تشخیص حکم واقعی از حکم ظاهری یکیش اینه هر حکمی مشروط به علم باشه واقعی نیست و مولوی میگه ترازو نداری. پرازو ره زند هر کس این اگه ترازو نباشه انسانو دون میزنن ترازو کرد نداری پرازو ره زند هر کس یکی قلبی تو پنداری که زر دارن یه چیز مقلوب رو رنوان زر به ما میدن معیار میخواد برای خود طلبه ما طلبه ها رو در حفظهای حق نمیدونیم افرادی که میتونن نظر بدن مثل نائینی مثل آغازی ها شما فکر کنید تا فردا وقت هست بشینید فکر کنید موقع خواب بشینید فکر کنید دو ساعت یک ساعت چیزی که بین طلبه ها مفتوکه و عمل بهش نمیشه تفکر کنید یعنی شما دو ساعت وقت دارید فکر کنید اگه شده آقا این بنویسن به نمیسن که ما میافتاش کنیم که طلبه پیدا شد که در عمرش یه دو ساعتی وقتی داشته با یه مسئله فکر کرده فکر میخوا با فکر خودتون اگر کسی در تایل با فکر نائینی و شیخن تایل بخونه خب آخرش میشه مقلد خوبی مقلد خوبی میشه و الله نمیتونه نمیتونه باشه ناینی نا در سه آخون که میرفته برای نظریات خودش میرفته نه که ما بریم برمینیم آخون چی میگونه یاد بگیریم و اونایی که این درس و میان کارو به وجبی و سفحی خوندنش نداشته باشه اونا دارن، حوصله دارن میخوان بیان قول بدن بینهم هم و بین الله وقت بذارید برای که میارهایی رو باید تشت کنید برای خودتون که مبانی بقیه خودتون در همین کلاس ها بشه که معلوم باشه شما در این موارد قائل به چه مبنایی هستید پ6 تا قول آخرین قول خودتون نه اینکه ما شیش هفته قول ولد باشیم همهش مال دیگران اینکه میشه توپانی مثل این گله دیگران برداریم موظف باشیم باز هر گله بره خونه خودشو باز صبح همین در وسائل که قومه اصول ساخت میشه و تا الان نزیری براش نمیمده و خاطر اینکه در موارد که آخون با شیخ اختلاف داره آخون به انحراف رفته، بنابراین این شیخ انساری در قومه اصولی روی نه تعمل کنید ودک کنید برای تنمیه نوانی خودتуюم même که در معلوم میشه یه دو که ما به اون باید بسیم این بینیم سم حالا یماشی میارم بسیم این بینیم سم ببینم بینیم بیشم این مثلا